خوب خوبم به کلاس دیگری از دانشکده کوچکه کتاب مقدس خوش اومدین. خوشحالیم که امروز باز هم با ما همراه هستیم. همونطور که وعده داده بودیم، امروز به بررسی تاریخی کلیسا ادامه خواهیم داد و ضمن اون با خدمات پولس رسول نیز آشنا خواهیم شد. کتاب اعمال رسولان که امروز به بررسی اون ادامه میدیم، پنجمین کتاب از عهد جدید و کتاب تاریخ شکل‌گیری کلیساها هست. یادتون باشه که هدف از ایجاد کلیسا شاگرد سازیه. این فرمانیه که خداوند عیسی مسیح به شاگردان خودش داده. آیا شما شاگرد عیسی مسیح هستید؟ آیا شما شاگرد میسازید؟ با هم به معلممون گوش کنیم تا ببینیم امروز خدا میخواد به ما چی یاد بده. یک بار دیگه می توجه شما رو به کتاب اعمال و به چیزی که الگوی پنتیکاس گفتیم جلب کنم. فکر می کنم الگوی پنتیکاست میتونه عنوان خوب دیگری برای کتاب اعمال باشه چون پویاترین واقعی در کتاب اعمال پنتیکاس هست که در باب شرط شرح داده شده هدف از پنتیکاس اجرای ماموریت بزرگ بود ماموریت بزرگ نه تنها هدف پنتیکاس بود بلکه هدف کلیسا و هر چیزی هم بود که در کتاب اعمال می خونید وقتی روح القدس به کلیسا قدرت داد که ماموریت بزرگ را اجرا کنه الگوهای خاصی شکل گرفت می به الگوهای بیشتری از پنتیکاس نگاهی بندازیم یکی از الگوهای پنتیکاس مربوط به قلبه روح القدس بر تعصبات اعضای کلیسه های اولیه هست تعصب یا تبعیض از همان بد به خلقت وجود داشته تا وقتی که دو نفر روی زمین باقی بمونن یکی از اونها فکر خواهد کرد که بهتر از دیگری است. این ماهیت تعصبه تعصبات انواع فراوانی دارند تعصبات مذهبی هست، تعصبات ملی نژادی اجتماعی و شما میتونید انواع دیگری از تعصبات رو در کتاب اعمال ببینید شخصیت های کتاب اعمال کسانی بودند که چنان تعصباتی داشتند که من و شما حتی نمیتونیم تصورش رو بکنیم مثلا بین یهودیان و سامری ها وجود داشت سامری ها یهودیانی بودند که با نژادهای دیگه ازدواج کرده بودند و این طبقه موسی ممنوع بود خیلی از افراد نیمه یهودی بودند، سامریها کسانی بودند که وقتی قوم یهودا در اسارت بابل و پارس بودند، سرزمین یهودیه رو اشغال کرده بودند. بنابراین تضاد شدیدی بین سامریها و یهودیان وجود داشت. وقتی الگوهای پنتیکاس رو میبینید، وقتی پنتیکاس های متعدد رو میبینید که انجیل رو در کلیساهای اولیه منتشر میکنند، ملاحظه میکنید که کلیسا به سامره هم رسیده، از اونجایی که همه مسیحیان اولیه یهودی بودند. اونها باید وقتی به سامریها بشارت میدادند به تعصبات خودشون نسبت به اونها غلبه کردند. در ما به ده ملاحظه کنید که خدا چطور در پتروس توسط تعصبش کار میکنه. پتروس برای دعا به بالای بام میره و در همون حال از خداوند رویایی میگیره. در اون رویا چیزی مانند یک صفره بزرگ دید که از چهار گوش آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین میامد. در آن چهار چهارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت صدایی به گوشش رسید که میگفت ای پتروس برخیز زب کن و بخور حالا این حیوانات همه حیوانات ناپاکی بودند حیواناتی که خوردن گوشتشون برای یهودیان ممنوع بودند و پتروس در پاسخ میگه خیر خداوند زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم همون صدا اومد که آنچرا خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری پتروس باز هم میگه نه nah, من این کار رو نمیکنم پتروس در تمام عمرش فکر میکرده که نباید اون حیوانات رو بخوره و برای سومین بار همون صدا میگه ای پتروس برخی ضب کن و بخور در این هنگ از پایین صدای در میاد عدهی پشت در بودند و فریاد میزدند و میپرسیدند آیا شمعون ملقب به پتروس در اینجا مهمان هست؟ پتروس در خانه مردی به نام شمعون دباغ مهمان بود این غیر یهودیان از طرف افسر رومی آمده بودند که در هنگ رومی معروف به هنگ ایتالیایی خدمت میکرد و نامش کورنلیوس بود. او مرد پارسایی بود و رویایی از خداوند گرفته بود که باید کسانی را به خانه شمعون دباغ بفرسته و پتروس رو دعوت کنه تا به او و دوستانش بگه که چطور باید نجات پیدا کنند. به شخص متعصبی فکر کنید که درگیر چنین وضعی شده باشه. کورنلیوس نه تنها غیر بلکه افسر رومی نیست هست، یعنی دشمن پتروسه. یهودیان تصب باور نکردنی نسبت به غیر یهودیان داشتند. اونها به غیر یهودیان سگ خطاب میکردند چون می گفتن یک غیر یهودی به اندازه یک سگ هم از مسائل روحانی خبر نداره. پس به غیر یهودیان سگ میگفتند برای یهودیان رفتن به خانه غیر یهودیان ممنوع بود و حالا این افراد از پتروس میخواند که به خانه شخصی غیر یهودی بره به خانه یک افسر رومی، و به او بگه که چی کار کنه که نجات پیدا کنه و به شناخت خدای زنده نائل بشه. میتونید ببینید که چرا خدا میخواست پتروس یه رویا ببینه. پتروس به یک رویا نیاز داشت تا متقاعد بشه که وارد خانه یافسر افسر رومی بشه و به او بگه که چطور نجات رو تجربه کنه. من این داستان رو در اعمال با بده خیلی دوست دارم. وقتی پتروس به خانه این افسر رومی میره او به طرف پتروس میدوه و در برابرش میکنه. در زبان اصلی یونانی گفته شده که پتروس مانع کرنلیوس میشه که به پاهای او بیفته و به او میگه هرگز این کارو با من نکن من هم انسانی مثل تو هستم پتروس احترام بیش از حد کرنلیوس رو نمیپذیره من فکر میکنم امروزه ما در این مورد داریم راه خطا میریم. شاید شماها هم شنیدید که مردم میرن و پاهای مجسمه پتروس رو میبوسن تا جایی که اون فلز به کلی فرسوده شده فکر می‌کنی اگر پتروس امروز اینجا بود، در این بار چه احساسی داشت؟ من که شخصاً فکر می‌کنم که او اصلاً راضی نمی‌شد. به هیچ وجه پذیرفت کسی در مقابل او تعظیم و سجده کنه. او به کورنلیوس گفت این کارو با من نکن، من هم انسانی مثل تو هستم. در بخشی از این رویا روح القدس به پتروس گفته بود با خادمین کورنلیوس بره و از اونها سوالی نپرسه. وقتی به خانه یوس رسیدن، یوس دوستان و اقوامش رو جمع کرده بود. و داستان رو به پتروس گفته بود و گفت چهار روز پیش درست در همین وقت یعنی ساعت سه بعد از ظهر من در خانه خودم به نماز مشغول بودم که ناگاه مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد و گفت ای کرنلیوس دعاهایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا میدهی در پیشگاه خدا منظور شده است بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن او در خانه شمعون دباغ که در ساحل دریا واقع است مهمان هست وقتی او بیاید با تو حرف خواهد زد پتروس مفهوم رویای خودش رو در ای که در خانه کرنلیوس میکنه به ما میگه پتروس میگه من به این حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیضی قائل نمی شود این معنی رویای پتروس بود اون حیواناتی که در درون سفره بودند نماد مردمان غیریهودی یهودی بودند پتروس باید فهمیده باشه که معنی رویای او چی بوده چون وقتی او به خانه کرنلیوس سفر کرد به کرنلیوس و دوستانش گفت خدا گفته آنچرا خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری یعنی هیچ کسی را ناپاک نپندار نا این پیغام بزرگی در رابطه با تبعیض و تعصب بود این پیغام یکی از الگوهای پنتیکاست هست. در رابطه با غلبه بر تعصب شما پنتیکاست دیگری رو میبینید. پتروس شروع به موعظه انجیل میکنه. او پیغام خودش رو به رأی حاضرین نمیذاره و از اونها دعوت میکنه چون که او با پنتیکاست دیگری مواجه شده ما میخونیم که روح القدس بر تمام کسانی که در اونجا حضور داشتند آمد همیشه وقتی پنتیکاست رو در کتاب اعمال میبینیم روح القدس بر مردم قرار میگیره روح القدس همون که در باب دو بر مردم قرار گرفته بود بر اونها هم قرار میگیره یقینا این پنتیکاست دیگری بود و به همه نشان داد که خدا وجود داره و در واقع میخواد که از دنیای فرقه یهود وارد دنیای غیر یهود هم بشه و انجیلش در اونجا هم منتشر بشه. در اعمال باب هشت شما داستان زیبایی رو میبینید که در مورد شاگردسازی هست. باز هم یادتون باشه من این رو بارها و بارها تکرار خواهم کرد که قلب کتاب اعمال معموریت بزرگ است. کتاب اعمال رسولان تماماً درباره اجرای معموریت بزرگ و تمام چیزهایی که برای انجام این مأموریت بزرگ باید به کلیسا داده بشه. ماموریت بزرگ میگه بروید شاگرد بسازید و شاگردان رو تعمید بدید و به اونها تعلیم بدید. وقتی ماموریت بزرگ اجرا میشه رسولان میرن حالا اونها خیلی هم در مورد رفتن مطمی نبودن. به این دلیل که یکی دیگه از الگوهای پنتیکاست جفاهایی هست که مسیحیان اولیه رو وادار میکنه که از اورشلیم خارج بشن. پیروان اولیه مسیح عملا مجبور شدن که به خاطر آزارها با هایی که خدا اجازه داده بود، اوشلیم را به قصد ثمره ترک کنند. این مداخله الهی یکی دیگر از الگوهای پنتیکاست است. اما همین که مسیحیان اولیه بیرون می‌رند، هدف اونها ساختن شاگرد است. تا حالا از خودتون پرسیدید که چطور شاگرد بسازید؟ لازمه شاگردسازی چیه؟ وقتی شما سفر می‌کنید و کنار کسی میشینید، تا حالا با خودتون فکر کردید که مسئولیتی دارید؟ من مسئول هستم که از ماموریت بزرگ اطاعت کنم و در صورت امکان شاگرد بسازم حالا من نمیدونم وقتی ما به مقصدمون میرسیم ما یا این کسی که کنار دست ما نشسته یک شاگرد خواهد شد یا نه آیا تا حالا اجرای ماموریت بزرگ رو جدی گرفته اید تا حالا از خدا خواستید که شما را برای شاگردسازی به کار بگیره خب این ماموریت بزرگه ما مکلفیم که شاگرد بسازیم یادتون باشه که گفتم در ماموریت بزرگ یک فعل امری وجود داره و اون اینه، شاگرد بسازید. و این یک گزینه نیست. این یک فرمانه. بعد از اون چهار فعل دیگر هست. رفتن، موعظه کردن، تعمید دادن و تعلیم دادن. شما همیشه میدید، می میکنید، تعمید میدید و تعلیم میدید. اما هدف شما همیشه شاگرد ساختنه. آیا میدونید چطور باید شاگرد بسازید؟ در باب هشت اعمال، این داستان زیبا رو بخونید مردی به نام فیلیپوس بود که انتخاب شده بود جز اولین شماسان شم باشه و کارهای کلیسا رو انجام بده. پیداست که فیلیپوس از کارهای عملی به شبانی تغییر جهت میده چون به او عطیه روحانی بشارت داده شده که عطیه ضروری برای شاگرد سازی هست. فیلیپوس به ساامره میره و در اونجا بشارت مض شده و پرسمری داره به نظر میرسه که ساامری ها بسیار مشتاق شاگرد شدن هستند. روح القدس در به بشارت فیلیپوس بر او قرار می گیره و او در سامره بشارت گسترده ای را آغاز میکنه. کند. روح القدس به فیلیپوس میگه برخیز به طرف جنوب و به آن جاده ای که از اورشلیم به قزه می میرود برو. فیلیپوس میتونست بگه اما خداوندا یه مبشر که به بیابون نمیره. مبشرها به مراکز شلوغ میرن. چرا من نباید به سامره بیام در حالی که اونها تضمین میکنن که در اولین شبی که من میخوام سخنرانی کنم 2000 نفر حضور داشته باشند همراهان من پیشاپیش رفتند و مقدمات سفر منو به شهرهای صامره فراهم کردند این اصلا عملی نیست که من به بیابون برم چرا یه مبشر باید به بیابون بره کار مبشر شاگردسازی توی بیابون که کسی وجود نداره اما فیلیپوس این کارو نکرد چون میدونست که بدون حضور روح القدس شاگردسازی امکان نداره و تنها دلیلی که مردم در سامره شاگرد میشدن به خاطر این بود که روح القدس داشت از طریق من کار میکرد. اگر روح القدس گفته به بیابون برو، فیلیپوس میدونه که بهترین کار اینه که به بیابون بره. وقتی به اونجا میرسه کاروانی از کالسکه ها رو میبینه که از بیابون رو بور میکنن. روح القدس با او صحبت میکنه و میگه به طرف اون عرابهی که میگم برو. در زبان یونانی منظور عرابهی خاص هست. فیلیپوس از فرمان روح میکنه، و به اون عرابه نزدیک میشه بعد مردی رو میبینه که در عرابه نشسته. او یک حبشیه. اینجا هم با موضوع تعصب برخورد میکنیم. این حبشی سیاستمدار و صندوقدار حبشیها هست. مشخصه که او یک حبشی و رهبر سیاسی هست او در حال خواندن توماری از اشعیا هست. این سیاستمدار حبشی معلوم بود که از حبش تا اورشلیم سفر کرده بود چون به لحاظ روحانی گرسنه بود. وقتی به اورشلیم رسید، تنها چیزی که به اون مواجه شد افراد سرد قوم خدا بود. او هیچ رابطه روحانی در اونجا پیدا نکرد. با این حال توانست نسخه‌ای از اشعیا رو تهیه کنه. وقتی داشت به حبشه برمیگشت و از بیابان عبور کرد تقریباً تومار اشعیا رو تا با آخر خونده بود. او به باب 53 اشعیا رسیده بود. اگر در بررسی کتاب اشعیا با ما بودید، میدونید که در بین تمامی باب‌های کتاب باب 5سه یکی از بهترین باب بشارتی هست. این باب انجیل ایسای مسیح رو به روشی زیبا مطرح میکنه این باب اینطور میگه. همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد. سیاست مدار حبشی داشت این باب رو می‌خوند و وقتی فیلیپوس میشن او چی میخونه؟ لاجرم به او میگه دوست من کتاب بسیار خوبی رو داری میخونی آیا چیزی رو که میخونی درک میکنی؟ و هبشی در پاسخ میگه تا کسی منو راهنمایی نکنه چطور میتونم اون رو بفهمم حبشی از فیلیپس خواهش کرد که سوار کالسکه بشه و پهلوی او بشینه اون قسمتی رو که میخوند چنین بود او مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند یا مثل بره‌ای که پیش پرشم چینان زبان نمیگشاید کلامی به زبان نیاورد عبشی به فیلیپس گفت این مردی که این کلمات رو نوشته آیا در مورد خودش صحبت میکنه یا در مورد شخص دیگری درست در همونجا در همون باب میخونیم که فیلیپس شروع میکنه به صحبت کردن از عزیزای مسیح و از انجیل عیسی مسیح ما نمیدونیم اونها چه مسافتی رو با هم طی کردند و یا چقدر با هم صحبت کردند باب هشت اعمال به ما میگه که فیلیپس عطیه بشارت داشت و میدونست که چطور موضوع صحبت رو به انجیل بکشونه شاگردسازی در گرو این هست که مردم رو به مرحله تصمیم گیری برسونید وقتی شما انجیل رو شنیدید سوال جدی این بوده آیا حاضرید خودتون رو تسلیم این انجیل بکنید و آیا خودتون رو متعهد به این انجیل میدونید فیلیپس بشارتش رو به این ترتیب به رأی اون هبشی گذاشت با اشاره به تعمید این باب زیبا باب هشت اعمال گذشته از اینکه به ما نشون میده چطور شاگرد بسازیم همینطور معنی و مفهوم تعمید آب را هم به ما نشون میده مهیج بخش این داستان اطاعت فیلیپس مبشر از روح القدس است بذارید شما رو تشویق کنم وقتی روح القدس شما را برمیانگیزه همون همونطور که فیلیپس رو برانگیخت آیا مایل هستید که به او واکنشی سری نشون بدید و اطاعت کنید سازی جدا از کار روح القدس امکان پذیر نیست اما با خدا با روح القدس همه چیز امکان پذیره. وقتی روح القدس شما رو برمیانگیزه که با کسی که کنار شما صحبت کنید یا با هر کسی که سر راه شما قرار می‌گیره، دو واقعیت رو به خاطر بسپارید. واقعیت شماره یک شما نمی‌تونید، واقعیت شماره دو عیسی مسیح می‌تونه. پس بفهمید که شما به تنهایی عمل نمی‌کنید. نسبت به دعوت روح القدس و صحبت کردن از مسیح با کسی که مشیت الهی سر راه شما قرار داده، واکنش درست نشون بدید و اطاعت کنید. شاید شما مثل اون هبشی باشید که میخواید بیشتر و بیشتر یاد بگیرید در این صورت به شما خیر مقدم میگیم و ازتون می که در این دوره ها دانشجوی وفاداری باشید و با ما بمانید ما داستان زیبایی رو در باب هشت اعمال دیدیم که به ما نشون میده چطور شاگرد بسازیم عیسی در پایان اناجیل و در ابتدای کتاب اعمال به شاگردانش مأموریت داد که شاگرد بسازند در باب هشت نمونه زیبا به ما داده شده که چطور شاگرد بسازیم ممکنه ما در مورد نحوه تعمید توافق نداشته باشیم کلیسا با نحوه تعمید ایمانداران دسته بندی شد بعضی ها آب می پاشند بعضی ها در آب فرو میبرند بعضی ها در حالی که درون آب سه بار میشونن تعمید میدن و بعضی ها به پشت در آب می خوابونن. ما نظرات مختلفی پیرو درباره نحوه تعمید داریم یه بار شنیدم که بچه های یه وعث بابتیست داشتن کلیسا بازی میکردن و حیوانات اهلی تمام همسایه ها رو تمید میدادند اونها گربه بزرگی داشتن و سعی می‌کردند اون گربه رو در تشتی تعمید بدن هر بار که سعی می‌کردند این گربه رو درون تشت آب فرو ببرند گربه بزرگ خودش رو تکون میداد و یا اونها رو چنگ میزد و یا آب رو به اطراف می‌پاشید اونها سه بار سعی کردند گربه رو در آب فرو ببرند اما نتونستند بالاخره وقتی گربه داشت چنگ میزد و شلپ شلپ میکرد، یکی از اونها به دیگری گفت بیایید آب رو به او بپاشیم پدر اونها معتقد بود که تنها راه قوته ور کردن در آب هست. راستشو بخواید من به نحوه تعمید اهمیت نمیدم مسئله مهمی که برای من اهمیت داره مفهوم خود تعمید هست که البته این منجر به سوالی میشه معنای تعمید چیه صرف نظر از اینکه چطور تعمید بدید معنی تعمید چیه من فکر میکنم فیلیپوس به ما میگه وقتی که او سیاستمدار حبشی و شاگرد میسازه هدف از تعمید اینه که نظر او رو از پذیرفتن انجیل بدونه چطور مسئله انجیل مسیح رو به رأی میذاید؟ آیا میگید همه سرها پایین همه چشمها بسته کسی نگاه نکنه و حالا اگه کسی میخواد به مسیحیمان بیاره دستشو بلند کنه؟ خب چنین چیزی توی انجیل نیست اما بعضی کلیسه ها این کارو می و خدا از این هم استفاده میکنه. و یا میگید بیاید جلو و به تریبون نزدیک بشید؟ اتوبوس منتظره و ما شما رو در اینجا ترک نخواهیم کرد؟ این روشی بود که، بلیگراهان گراهام به کار می برد و هزاران هزار نفر به این وسیله تبدیل می‌شدند اما این چیزی نیست که کتاب مقدس میگه کتاب مقدس نمیگه به مردم اینو بگیم چطور از مردم میپرسید ایمان آوردن یا نه کتاب مقدس در این باره چی میگه من معتقدم که کلیسای عهد جدید و معموریت بزرگ پاسخ این سوال رو میدن جوابش تعمید هست. معموریت بزرگ میگه شاگرد بسازید بعد اون شاگرد رو تعلیم بدید من معتقدم که دنیای کینتوز مفهوم تعمید رو بهتر از ما می اگه شما در جامعه‌ای هستید که با انجیل دشمنی می و شما شروع کنید به کلاس کتاب مقدس رفتن و با مسیحیان معاشرت کنید به احتمال زیاد شما تحت مراقبت مخفی قرار خواهید گرفت و مورد سوء زن خواهید بود. اما اگر بعد از تمام کردن کلاس کتاب مقدس به رهبران اون کلاس بگید که من به هر چیزی که انجیل مسیح میگه باور دارم چطور میتونم این رو به همه اعلام کنم اگر اون شخص کتاب مقدس رو به خوبی بدونه به شما میگه ما شما رو تعمید میدیم اگر اونها شما رو تعمید دادن بعد از اونی که جامعه متخاسم احتمالا شغل شما را از شما خواهد گرفت آزادی شما و حتی شاید جان شما رو بگیره به نظر اونها وقتی شما تعمید گرفتید دارید اعلام میکنید اگر میخواهید تمامی مسیحیان رو بکشید مرا هم بکشید این هدف تعمید هست تعمید شاهد بیرونی اعتقادی درونی هست آشکاره که فیلیپس تعمید رو مطرح کرده چون هبشی میگه نگاه کن در اینجا آب هست چه چیزی مانع تعمید گرفتن من هست و فیلیپس پاسخ میده اگر با تمام دل ایمان آوردی هیچ مانعی وجود نداره هبشی میگه من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست در باب هشتم میسازه. این چیزی که خیلیا احساس میکنند شرط ضروری تعمید هست چه کسی شایسته هست و چه کسی آماده تعمید هست وقتی هبشی گفت آیا مانعی برای گرفتن تعمید من هست فیلیپس پاسخ داد اگر با تمام قلب ایمانداری مانعی وجود ندارد ما به این تعمید ایمانداران میگیم این تقریبا مثل تفاوت بین نامزدی و ازدواج هست وقتی مردی از زنی خواسكاری میکنه و زن خواسكاری او را میپذیره این در واقع لحظه ای مقدس بین اونها هست وقتی مردم ازدواج میکنن معمولا کارت دعوت هایی و در اون کارت های دعوت به مردم اطلاع میدن و اونها رو به کلیسا دعوت میکنن و بعد مراسم ازدواج برگزار میشه هدف از اون مراسم ازدواج این هست مراسم عقد اعلام عمومی تصمیمی هست که اونها قبلا به طور خصوصی بین خودشون گرفتند. نجات در لحظه ای که شما به عیسی مسیح ایمان میارید واقع میشه و نجات زمانی واقع میشه که شما قلب و زندگیتون رو وقف عیسی مسیح میکنید و از اون میخواید که خداوند من ناجی شما بشه این زمانی هست که شما پادشاهی خدا رو میبینید و وارد پادشاهی خدا میشید این چیزیه که واقعا اهمیت داره این چیزی خصوصی بین شما و خدا هست با من تعمید چیزی مانند مراسم عقد روحانی هست این زمانیه که شما دوستانتون و شاید تمام دنیا رو دعوت میکنید و در مقابل اونها میستید و میگید من منصوب به ایسای مسیح هستم کسانی که معتقد به قوتهور کردن در آب هستند بر این باورند که وقتی در آب فرو میرید این تصویری از ایمان شما به مرگ عیسای مسیحه و وقتی از آب بیرون میاید این تصویری از ایمان به قیام مسیح است تعمید هویت شما در مسیح با مرگ و قیام او هست اما مسئله مهم درباره تعمید اینه تعمید راهی کتاب مقدسی برای اعتراف علنی ایمانتان به عیسی مسیح است. وقتی شما کسی رو به مسیح هدایت می‌کنید که از مذهب دیگری هست، معنی تعمید بیشتر ملموستره. من شبانی رو می‌شناختم که سالها پیش با یک یهودی دوست بود. مرد یهودی در کلاس‌های کتاب مقدس اون شبان شرکت می‌کرد و در ضمن به کلاسی هم می‌رفت که یک عالم یهودی درس می‌داد. بعد از گذشت حدود یک سال مرد یهودی به او زنگ زد و او رو به محل کار خودش دعوت کرد و گفت من ایمان دارم که عیسی همان مسیح موعود هست. کار او فروش مبلمان بود. شبان از او پرسید چه موقع کارتون رو تعطیل می کنید؟ ما روز یکشنبه مراسم تعمید داریم و خوشحال میشیم که تعمیدتون بدیم. او رنگش مثل کاغذ سفید شد و پرسید آیا می دونید معنی این برای من چیه؟ آیا می دونید این به چه بهایی در روابط من تموم میشه؟ شبان گفت من قانون نمیذارم این نقشه من نیست. و تعمید به های اعتراف ایمان شما هست. شما باید تصمیم بگیرید آیا حاضر هستید این بهار بپردازید یا نه؟ بعد از دعای فراوان او به این نتیجه رسید که آماده از تعمید بگیره. اما او با این تصمیم بهای های سنگینی پرداخت. وقتی کسی از مذهب دیگری تعمید میگیره و از ایمانی به ایمان دیگر متحول میشه من فکر میکنم مفهوم تعمید واضحتره. وقتی سیاستمدار حبشی از فیلیپوس در مورد تعمید پرسید، فیلیپوس شرایط تعمید رو به او گفت که اگر به قلب خود ایمان داشته باشی، میتونیم تو رو تعمید بدیم و ما میخونیم که بلافاصله از عرابه پایین اومدند و در آبی که در اونجا بود، او را تعمید دادند. در اونجا به طور واضح به ما گفته نشده که فیلیپوس چطور اون حبشی رو تعمید داد، اما در زبان یونانی کلمه تعمید به معنی فرو رفتن در آب است. کتاب مقدس اونطور که باپتیست علاقمند هستند، این مورد رو باز نکرده. در کتاب مقدس فقط اومده که فیلیپوس هبشی رو در اون آب تعمید داد. در این داستان هم شما یکی از الگوهای پنتیکاست رو میبینید که در واقع الگویی هست که به ما نشون میده لازمه شاگردسازی چیه؟ سه چیز در مورد سازی هست. خدا میخواد از گمشدگان شاگرد بسازه. بین خدا و شخص گمشده زنجیری با سه حلقه وجود داره. اولین حلقه در این زنجیر روح القدس هست. دومین حلقه کلام خدا هست و سومین حلقه خادم خدا یا کسی هست که شاگرد می سازه. منظورم اینه که نمایندهی ای که خدا امروز توسط او در روی زمین کار می‌کنه روح القدس هست. ابزاری که روح القدس بیش از هر وسیله دیگری استفاده می‌کنه کلام خدا هست. اما بعضی ها سازی رو اینطور توصیف می‌کنند. روح خدا با استفاده از کلام خدا توسط خادم خدا فرزند خدا به وجود میاره این در واقع مفهوم کلی ساختن شاگرد است. اگر این صحت داره، اگر روح القدس نماینده خدا بر روی زمینه و او از کتاب مقدس استفاده میکنه و از کسانی که شاگرد میسازند استفاده میکنه، پس معنیش اینه که یک رابطه سه حلقه‌ای بین خدا و شخصی که شاگرد میشه وجود داره. اولین حلقه روح که شما را ملزم میکنه با کسی که در حین سفر کنارتون نشسته از مسیح صحبت کنید و او رو به مسیح هدایت کنید. روح القدس باید در اون شخص هم کار کنه. وقتی مطمئن شدید روح القدس شما را هدایت میکنه و آثار گرسنگی روحانی رو در شخص مقابل دیدید، بعد از اون حلقه بعدی کلام خدا هست. کلام خدا ابزاریه که خدا وعده میده در شاگردسازی استفاده کنه. پتروس میگه که کلام خدا مثل بذری فاسدناشدنیه که سبب تولدی تازه میشه. ایسا میگه شاگرد شدن مثل تولد دوباره هست. در این تولد روحانی پتروس میگه که تخم این تولد کلام فناناپذیر خدا هست. وقتی کلام خدا وارد قلب اون شخص شد، بعد از اون شما هم باید اونجا حضور داشته باشید چون کسی که شاگرد میسازه حلقه سوم این ارتباط بین شخص گم شده و خدا هست. در این داستان هم هر سه حلقه رو میبینیم. واضح که فیلیپوس با هدایت روح القدس به بیابان رفت و به کالسکیه هبشی نزدیک شد و معلوم بود که روح القدس در اون هبشی هم کار میکرد وگرنه به دنبال کلام خدا او این همه راه را از هبشه تا اورشلیم نمی اومد. نشان فعالیت روح در کسی اشتیاق روحانی برای چیزهای روحانی هست. اگر شما ایمان و جسارت داشته باشید که این را از اونها بپرسید خواهید فهمید که خیلی ها علاقمند به مسائل روحانی هستند دومین حلقه کلام خدا هست که باز در این داستان رو می بینید. هبشی داشت از کتاب عیا میخوند و فیلیپوس از او میپرسه آیا چیزی رو که میخونی درک میکنی و او پاسخ میده تا وقتی کسی به من کمک نکرده چطور میتونم درکش کنم امیدوارم این شما رو به چالش بکشه انگیزه من برای تعلیم کلام خدا همینه گمشدگان نیاز دارند که خادمین خدا سوار عربی زندگی اونها بشن و اونها کمک کنن تا کلام خدا رو درک کنن. این داستان زیبا تمامی درک من از شاگه سازی رو برای من مکاشفه کرد. وقتی شروع به خدمت کردم خیلی خجالتی بودم. مردم فکر می من عقب افتاده هستم. به خاطر این شرمساری بی نهایت مردد بودم که آیا از مردم بپرسم که علاقمند به مسائل روحانی هستند و یا هر چیز مشابهه این؟ من اونقدر خجالتی بودم و بی اعتماد به نفس بودم که نمیتونستم حرف بزنم. اما وقتی این داستان رو در باب هش فهمیدم که این من نیستم بلکه او هست و او با من هست. من نمیتونم اما او میتونه و او با من هست. من حتی دلم نمیخواد اما او میخواد و او با منه. بعد از این متوجه شدم که میتونم به گذشته نگاه کنم و بگم من این کارو نکردم بلکه او انجام داد چون او با من بود. وقتی من رویایی در مورد شاگردسازی دریافت میکنم میدونم که باید خجالت رو کنار بذارم و اطاعت کنم. اولین بار من وقتی میخواستم به ملاقات کسی برم از روی لیست اسامی افراد شروع به دعا کردن کردم و به طرف اسمی هدایت شدم و به دیدن اون خانم موسین رفتم. وقتی در خانهش رو زدم او با کتاب مقدس خودش دمه در اومد. و گفت همین الان داشتم دعا میکردم که خدا کسی رو برسونه که این را برای من باز کنه. با خودم فکر کردم که همون ارتباط سهلقه ای در کاره. از اون روزها من دائما مسائلی در ارتباط با شاگردسازی رو متوجه میشم. شاگردسازی یکی از الگوهای پنتیکاستی هست. ماموریت بزرگ میگه شاگرد بسازید و کتاب اعمال تماما مربوط به شاگردسازی هست. پنتیکاست آمد تا کلیسه اولیه بتونند شاگرد بسازن. باب هشت کتاب اعمال باب چگونه کتاب اعمال هست که به ما نشون میده چگونه شاگرد بسازیم. آیا شما شاگرد هستید؟ آیا به عیسی مسیح ایمان آوردید؟ آیا تعمید گرفتید؟ آیا میدید و معزم می کنید؟ تعمید میدید و شاگرد می سازید؟ این چیزیه که به ما فرمان داده شده. عزیزان متشکرم که دانشجوی منظم و وفاداری هستید و در این کلاس ها حضور پیدا می کنید تا در ایمان خودتون رشد کنید. آیا شما تعمید گرفتین؟ آیا اون گام اطاعت رو برداشتید که به همه اعلام کنید شما پیرو خداوند ایسای مسیح هستید؟ کرنلیوس و اهل خانه او سرمشق بزرگی برای ما هستند و پتروس نمونه بزرگی هست از اینکه میشه حتی به تعصبات خود غلبه کرد و مجدده انجیل رو حتی به دشمنان هم بشارت داد. آیا در زندگی خودتون دشمنی دارید که؟ خدا میخواد توسط شما به اونها پیام نجات بخش انجیل رو بشارت بده. دعای ما اینه که این درس شما رو تشویق کنه و به چالش فا داره تا این کار رو بکنید. تا برنامه بعدی امیدوارم محبت و فیض خدا قلب شما را از شادی و آرامش لبریز بکنه.